درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد. مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. راستی تو هم به شیراز می روی؟ بله. من هم با خانواده ام به شیراز می رویم. چند روز در شیراز می مانی؟ تقریبا یک هفته. کی به تهران بر می گردی؟ جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم